ای مفصلی که من احساس وظیفه میکنم اجمالا ارز کنم انقدر ارز میکنم خسته نشید اگر حاجت میخواید بد نمیده نبرید حکمتها و مصالحی در کار که انسان بعضی وقتا متوجه میشه بنده خودم یه خاطرهای رو ارض میکنم خدا میدونه راست میگم و مبالغم نمیکنم حاجتی رو هشت سال میخواستم هشت سال تو هر سفر زیارتی خواستم تو هر مناسبت دعایی خواستم هشت سال طول کشید تا به من دادن بعد از اون که حاجت رو به من دادن و لاهه قسم که سیغه قسمه یقین کردم اگه زودتر به من داده بودن به ضرر آخرات آخرت من بود ظرفیت نداشته بیچارم میکرده لطف خدا طولش داد طولش داد یه موقعی داد بعدم به من فهمون ما تسلیم امر پروردگار رو باشیم اگر حضرت ابوالفضل باب الحوایج اگر امام حسین اینجوریه امام حسین تو گودال قتلگان میگه الهی رزن به رضائ بعضی وقتها میخوان ما رو امتحان کنند، شما چرا خسته میشی نه خیر قوی باش واسا تو مسیر دین انسان با یه مختصر مسائل اینجوری بخواد مثلا اون ایمانش رو از دست بده که خودی این تو امتحان باختنه ما اصلا خداوند تو دنیا داره امتحان ما رو گذشته ببینه که ما در مقابل مشکلات مسائل شخصی اومد خدمت امام صادق با آقای کمک مالی به من کن حضرت فرمود بهش یکی دیگه از راه رسید با آقای کمک مالی به من بکنید حضرت فوری فرمود بهش کمک مالی کردن یکی دیگه رسید کمک مالی حضرت فرمود بهش کمک کردن این دیگه بهش برخورد آقا ما شیعه شما ایم علاقمنده بهشون هر کی از راه میرسه پول بهشون میدید ما میخوایم ما اینجا میشونید فرض من میخواستم پلو خودم باشی نری پول داده بودم فوری رفته بودی در حدیث قدسی دیدم خدا به فرشتگان میگه دعای بنده دردمند رو دوست دارم چون رابطه ارتباط با خداست بعضی انسان‌ها رو که دوست دارم درد بهشون میدم تا دعا کنم و گاهی دعاشون رو دیرتر به اجابت میرسونم تا این حال باقی باشه واقعا اگه من همه چیزم تامین شد دیگه قشنگ میخورم و قشنگ میخوابم و خیلی بیخیال نمازیم که میخوام بخونم انقدر دیگه شاداب و سر حالم که این نماز منم از روی چک کم اما تا اونی که باید دل شکسته انسان نماز بخونه اگر انشالله رسیدیم به اون درجه که هم در سیری نمازمون با سوز و گداز باشه هم در گرسنگی یه حال دیگری داره یه وقت تو سلول انفرادی ماه رمضان آدم یک دل شکسته ای داره رغبت پیدا میکنم اون حال اشک و سوز و گداز دیگه پیدا بشه حالا ممکنه بگه خب میبریم تو زندان پیدا بکنی ولی خب من ضعیفم که تو زندان دلم میگیره ای با خدا حرف میزنم اما تو خونه خودم باشم سماور بجوشه و چایم آماده باشه ولی اون اسف شب میخوام فرض کنید نماز شب بخونم چای کنار دستم و آماده و همگی اون حال چرا من ضعیفم اگر به اون درجه رسیدم این دوتا برام فرق نمیکنه خدا دوست داره گاهی ما رو می مهری که خود افروختی جسم و جان و پیکرام را سوختی هر که زین آتش نسوزد پخته نیست وان که زین آتش بماند خام کیست ای تو داروی تن تبخیز من وی همه چیز من و هر چیز من روز هر چه تو برتافتم خیشتن را در وجودت یافتم می گدازد گرچه جانم از فراب زنده میدارد دلم را اشتیاق راستی را از چه جانم سوختی این چه آتش بود تو افروختی خوب کردی بیشتر جانم بسوز هرچه خواهی برلهی بر برفروز عاقبت من یار خود را یافتم نازنین دلدار خود را یافتم یاد تو روشنگر افکار من ای خوش آمن تا شدی تو یار من آید در مسیر خدا سوخت حضرت زهرار کم سوخته حضرت زینب کم سوخته ائمه هار کم سوختن حضرت عبالفز کم سوخته اینا سوختن تا به اونجا نور اگه بخواد بده شم باید بسوزه تا نور بده شم خاموش نور نداره روشنی نمیده شم ای که میسوزد نور میدهد وجود ما هم در راه خدا باید با سوختن برای خدا باشه لذا خسته نشی.